کتابه سراعت و جلد یک و 152 این کتاب رو پریشم معرفی کردم سراعت و جلد یک سطحه 152 و و انصب مالک دشمن علیه اون عقل میکنه. میگه من همراه تیغمبر بودم علی هم همراه تیغمبر بود از مدینه خارج شدیم صلی بود که زاقه های مدینه شکوته کرده بود علی نگاهی به این باغ اندا گفت یا رسول الله عجب باق زیبایی پیغمبر فرمودند علی جان باقهای تو در بهشت خیلی زیبا از از اینها شروع کرد جایگاه علی رو در بهشت توضیح دادن انصب مالک میگه وقتی پیغمبر اینا رو یکی یکی گفت رسید به اینجا فرده اد. رأسهو علا رأسهالی کتاب سرائت و سمتن جلده یک صفحه سد و پنجاب و دو و وزعه رأسهو علا رأسهالی سرش گذاشت و سر علی دیدی دونه سر پیشانی رو هم دیگه میچشمونم یا صورت می هاش که نره دیگه که بروسم به این حالت سردک ها بکا انشدید ها و پیغمبر گریه کرد گریه خیلی شدیدی فقال علیون علی گفت ما یکی که یا رسول الله چی شد یا رسول خدا به گریه افتادید خدشتی به رو میگفتید با آقای من میگفتید چی شد به گریه افتادید حالا زدائنون فی صدور قومن لا یبدون حالک حتی یک بدونی میدونید برای چی گریه میکنم علی جان اون کینه هایی که در دل این قوم و این مردم از تو شده هست لا یدونونه لک حفایت بدونی نمیتونن نسبت به تو آشکار کنم تا وقتی که من از میانشون بروم، یعنی علی اون وقتی که من از میان شما بروم. این کینه ها این اقده این حسادت ها این عدم قابلیت ها این عدم ظرفیت نسبت به مقام توی علی به جایی می رسد که وقتی من پیغمبر دارم نگاه میکنم الان به عالم ما برا اونو خدا به من نشون میده اینجوری دارم گریه میکنم برای تو خب چی بود اون کینه ها که بعد بروز کنه اجازه بدید اول از علی یکی بگم ند برم سراغ کتب حلی سنت کتاب بحار لندار جلد سی و هشت از صفحه سد و شست و هست تا سطحه سد و هشتاد مفصل نرمی کنه. از صفحه سد و شست و نزدیک بیسته به چیزی کمتر اون قضیه رو میکنه من فشرده عرض میکنم. کنم در جنگ خوارج محربان یک یهودی آمد پیش امیر المؤمنی گفت یا علی ما در کتب مذهبی خودمون خوندیم وسیع به حد هر پیانبر توی امتحان قرار میگیره باید آزمایش بشه و تعداد اون امتحان آزمایش هم معلومه من میخوام ببینم شما وسیع به حد بدیانه اگر هستید بگید اون امتحانات چند تاست و چجوری باید صورت بگیره علی فرمود بله راست میگید چارده امتحان برای وسیع پیغمبره و من علی این چارده امتحان رو خدا برای آن قرار داد. هفتاش رو در زمان پیغمبر هفتاش رو بعد از رهلت پیغمبر حالا برات میشمرم اولی در زمان خود پیغمبر که قرار شد من امتحان بشم یک وقتی که پیامبر در روز اونجا اون که امشر قسمتیش رو هم دیدید اغاره بستگان اطرافیان رو دعوت کرد و فرمود که هرکس اولین بار به من ایمان بیا برد امتحان من بود که شما در این مرحله چگونه در مقابل جمع میتونه دار من اونجا پیروز شدم با اینکه کتی نپذیرفت من پذیرفتم دومی در لیلة المبید بود شبی که بنا بود پیغمبر رو بکشم در فرمود بیا جای من بخواب امتحان دوم دو من بود سومی در جنگ بعد بود وقتی شیبه بود اطبع و ولی سه دشمن ساسقه پیغمبر حمله میخواستند به پیغمبر بکنن همه ترسیدن نزدیک برن فقط من بودم که در امتحان قرار گرفتم خودم و به کشتن دادم در جنگ بدر باعث پیروزی و مسلمین شدم سحرونی در جنگ احد بود وقتی پیغمبر تنها شد غدییشو گفتم من در این امتحان پیروز شدم پیغمبر رو نجاب دادم پنجمی جنگ خندق بود وقتی امر ع عبدود از یک نفر جت نکرد جلو بره و هی خریات میزد آیه سه تا پیغمبر شما که میگی که کشته میشی بهش میری اگر بخشید که جهنم میفرشتی کیه که بیاد من رو جهنم بدرسه یا خودش بهش بره یک نفر جرأت نکرد من در این امتحان پیرو شدم رفتم نزدیک ششومی در خیبر بود پیغمبر فرمود پر پرچم رو به دست کسی میدم، بهترین دست با من دادم هفتمی قرائت سوره براءت بود که خطی اونش را اطمینان داشت و من ایستادم این هفت در زمان پیغمبر اما حسایی که ما بعد از پیغمبر دید اجازه به بیدیه هاشیه برم بعد بکنن اون سلمه همسر متدگیره پیغمبر اسلام میگه پیغمبر تو بستر بود. حالش خیلی برد همون روزای آخر حیاتش فرمودن حبیل منو بگید بیاد آیشی فوری ترستاد سراغ باباش عبوبک بیاد وقتی عبوبک اومد پیغمبر اخو کرد سرشو برگردون هفته ترستاد سراغ باباش اومد او هم اومد پیغمبر سرشو برگردون. اون مثلا نمیگه گفتم چرا پیغمبر رو میازارید شما نمیدونید حبیب و پیغمبر کیه فرستادم شراغ عمیل المؤمنین حقا بیا پیغمبر شما رو میخواد منم دنه در استاده بودم پیغمبر حالشون بدی تو بستر علی از در وارد شدم پیغمبر لدش به خنده را شد علیه یا حبیبی علیه حبیبم بیا نزدیک بیا می علی... مثلا که علی نزدیک شد رفت و رفت و رفت دیدم دوتا تسببی به ژانال پیغمبر گوش شما بر در دهان و پیغمبر پیغمبر تمید از این اتاق برید دییرون کسی هم گوش نکن. او مثلنی که پشت در استاده بودم. فقط گاهگاهی صدای گریه علی بلند می شد میفهمیدم. یه جا دیدم علی یک نره عجیبی زد بعدها پرسیدم از علی آقا پیغمبر چه می گفت و گریه شما چی بود و نره شما چی بود؟ صوط پیغمبر یکی یکی امتحان عمت رو بعد نتیش بر من بود. اون جایی که گریه میکردم مصائبی که در این خانواده باید وارد بشه اونجایی که زجنگ بلند شد مصائبه شکسته رو پهلوی زهرا یا فعلی و صورت فاطمه سلام الله ها بود که من گفتم یا رسول الله اینجا را هم ساب کنم فرمود علی اگر میخوای در امتحان الهی پیروز بشی اینجا را هم باید ساب کنید حالا در این حدیث میگه آی رسول جالود رئیس یهودیات اومده پیش علی حق امتحانی که بعد از رحلت بود یک پیغمبر در کودکی منو تربیت کرده بود. عصب و کفن و دف نه پیغمبر بنات با من باشه. حالا جنازه پیغمبر رو دارم دف می‌دم. خبر دادن که خلیفه‌ی بنی ساعده جمع شدن. دارم خلیفه درست میکنن من تو یک بزنگاه حساس امتحانی قرار گرفتم. پیغمبر رو رها کنم برم اونجا که نکنه خلافت از من سلب بشه یا این که بگویم من وزیرم فعلا این است. نزاد این امتحان بیروش شدم. من قصب و کفن دف پیغمبر رو گرفتم. دوم وقتی خلیفه تراسیدن و من صبر بود چون اصل اسلام در خطر بود. من دچار کردم که خود عزت فرمودم صبر تو و فلحلقه غذا و فلحلقه شجا و فلعینه غذا من در حالی که استخان در گلو و خا در چشم گشتم ثبت کردم ثومی وقتی زمان ابو بود خلافت بر ابوبکر رسید دشمن من بود خلافت رو گرفت اما جاهای اسلام در خطر بود نمی از من مشورت نجات امتحان الهی بود من به خاطر اینکه حساب شخصی رو ابوبکر دارم راهنمایی دینی نمی‌کنم یا اینکه راهنمای دینی می‌کنم در این شدم گفتم اون که به نفع دین پیغمبر میگویم ولی اون شما ثمرش رو ببرید برای این امتحان جریش شدم چهارمی زمان عمر وقتی ابو این همه خدمت من به او کردم گفتم شاید بعد از مرگش بگه دیگه علی رو بیارید توی جامعه رو اسلامی کنه عمر رو گذاشت بر من مسلط کرد یک امتحان حاد دیگری دیدی این همه به ابو خدمت کردی چیکار کرد برای تو پس حالا رها کن اما زمان عمر اسلام در خطره. سوال میپرسن من علی گفتم خدا به پیغمبر بول ناده ببینش خدمت کنم و من در این امتحان پیروز شدم اون که به نفع احسان بود ولو عمر استفاده کرد من کوتاه نیومدم عمر رو کمک کردم این امتحان چهارم من پنجمی صبر در قضیه ناکسین وقتی با من بیعت کردم دست به دست من دادن بعد رفتم زن پیغمبر آیشه رو برداشتن جنگ جمل رو, رو راه انداختن من پیروز شدم میتونستم ق کنم تو نه اینجا امتحان الهی اینا رو با عزت برگردونید مدینه برگردوندم ششمی امتحان در جریان حکمیت ابوموسیای اشعری و امرئات اون قضایا من در این امتحان هم استادم پیروش شدم هفتمی پیغمبر گفت یک ادبه اطراب خوش مقدس خطر برای دین من به نام توارش در دوران حکومت تو قد علم میکنن جنگیدن با اینها برای تو خیلی جر تامو میشه باخبار جنگیدن میدونید یعنی چی با چه ایده که شب تا صبح تو رکوع بودن یه شب تا صبح مشغول سجود بودن پیشانی ها فین پی بسته روز قرآن و عبادت حالا علی میگه اینا دشمن بینن با اینا میجنگم میدونی چه قدرت میخواد این امتحان من علی بود میتونستم با اینا سازشکاری کنم اینا رو برای خودم نگه دارم گفتم نه من یک ذره خلاف دین عمل نمیکنم نه با خوارج جنگیدم این حق امتحان من این رسول جالود یهودی یه گفت یا علی به خدا اینا تو کتابای ما نوشته شده همه درسته اما یه چیزیش نگفتی حضرت تو مقصد کوفتی اهمیت هم نشستن فرمود بله اون یه چیزم الان میگم میدینی چیه وقتی در سرنور علی به این چار ده امتحان امتحان میشی بعد از این که به اون مقام به الهی رسیدی به دست اشقل اشقیان این محاسنت به خون سرت خداق میشه تو همین مسجد انقریب نزدیک جمعیت و دیرگریه رسول جالی شهادتی این گفت با دست به دست علی داد که به خدا و سمینا همه تو کتابای ما هست